فصل 15 هم آدت های برتری خفیف را در خودتان پرورش دهید هر عملی که به کاری را درو می کنی هر عادتی که به کاری شخصیتی را درو می کنی هر شخصیتی که به کاری سرنوشتی را درو می کنی رید فصل دوازده با چهار کلمه به پایان رسید آن کار غیر ارادی می شود در این چهار کلمه ساده یکی از اسرار بزرگ برتری خفیف وجود دارد که دست کم گرفته شده، بد تعبیر شده و به آن کمتر بها داده شده است، یعنی قدرت عادتها. همه ما عادتهای بد را میشناسیم با آنها در کشمکش هستیم، درباره‌شان صحبت می کنیم، کتاب می و ساعتهای متمادی از هر روزمان را به دیدن برنامه های تلویزیونی درباره آنها سپری می‌کنیم. عادت‌های بدی که میدانیم باید آنها را از بین ببریم، اما نمیبریم. و عادت‌های آزاردهنده ای که دیگران دارند و آرزو میکنیم که ایکاش نداشتند. همه ما از تأثیر قدرت موزیانه و مخربی که عادت‌های بد میتوانند در زندگیمان داشته باشند آگاهیم. اما با این همه آگاهی درباره عادت‌ها، هنوز هم تمایل داریم که قدرت عظیم عادت‌های مثبت و اکتسابی را نادیده بگیریم. اینگونه نیست که عادات خوب وجود نداشته باشند یا اینکه ما عادتهای خوبی نداشته باشیم ما عادات خوب داریم اما اصولاً قدر ها را نمیدانیم عاداتها و انتخابها دو نوع عادت وجود دارد عاداتی که به نفع شما عمل میکنند و عاداتی که علیه شما هستند مسواک زدن عادتی است که به نفع شما عمل میکند و جویدن ناخنها عادتی است که علیه شما عمل میکند. فکر کردن کامل درباره هر چیزی به نفع شما عمل می کند و پذیرفتن کورکورانه مطالب و شایعاتی که به صورت آنلاین می خوانید یا می علیه شما عمل می کند. جستجوی خصوصیات خوب در دیگران به نفع شما عمل می کند و انتظار داشتن بدی از آنها علیه شما عمل می کند. نوع اول نیروی برتری خفیف را به نفع شما به کار می گیرد و شما را در امتداد منهنی موفقیت حرکت می دهد. عادت‌های های نوع دوم برتری خفیف را هوشمندانه اما بیرحمانه علیه شما به کار می و شما را به پایین منهنی شکست میکشاند. عادت: کاریست که بدون تفکر انجامش می دهید. از محل کارتان به خانه برمیگردید در خانه قدم می زنید، یک قوطی نوشابه از یخچال برمیدارید و در حالی که با تلفن صحبت می کنید، تلویزیون را روشن می کنید. شما تصمیم آگاهانه‌ای نگرفته اید که نوشابه دقیقا همان چیزی است که الان به آن نیاز دارید یا اینکه همین الان باید برنامه‌ای را از تلویزیون تماشا کنید. شما روی تماس تلفنی تمرکز کرده بودید. نوشابه و سریال‌های آبکی فقط های شما هستند. سهرخیز بودن می‌تواند به عادت تبدیل شود. دیر بیدار شدن و تا دیر وقت بیدار ماندن هم می‌توانند به عادت تبدیل شوند. شکف کردن و انتقاد کردن از دیگران می تواند به عادت تبدیل شود. تمجید کردن و قدردانی کردن از دیگران نیز می تواند به عادت تبدیل شود. خرج کردن بیش از درآمدتان می تواند به عادت تبدیل شود. قرار دادن بخشی از درآمدهایتان در حساب بازنشستگی نیز می تواند به عادت تبدیل شود. به دنبال جنبه مثبت هر اتفاقی بودن میتواند به عادت تبدیل شود و دیدن تکه های ابر در آسمان آفتابی نیز میتواند به عادت تبدیل شود. اصل مطلب اینکه که همه این عادتهای خوب یا بد ریشه در انتخابهایتان دارند، ریشه در همان تصمیمات کوچکی که میگیرید و بر آنها کنترل کامل دارید. کنترل کامل دارید، البته در ابتدا، تا هنگامی که به صورت غیر ارادی درمی و مسئول زندگی خودشان می شوند. زندگیی که مسیر زندگی شما را تعیین می کند. بنابراین، سؤال این است که می خواهید کدام رفتارهایتان به عادت تبدیل شوند. با تکرار چند یک رفتار، تا هنگامی که به صورت غیر ارادی در آن رفتار به عادت تبدیل می شود. قلقه یک عادت برتری خفیف محض است اقدامات ساده ای که در طول زمان بارها تکرار شده اثر مرکب این عادت در طول زمان یا به نفع شما عمل می میکند یا علیه شما که به این موضوع بستگی دارد که آیا آنها عادت هستند که به نفع شما عمل می میکنند یا علیه شما عادت شما همان چیزی است که یا شما را به بالای منحنی موفقیت میرساند یا به پایین منحنی شکست سوق می دهد. جی پولگیتی یکی از اولین میلیاردرهای دنیا و کسی که در تمام طول عمرش ثروتمندترین فرد جهان شناخته میشد قدرت یک عادت را به این صورت شهر میدهد. هر کسی که میخواهد به نقطه اوج کسب و کارش برسد باید قدرت نیروی عادت را درک کند و دریابد که تمرینها و تکرارها هستند که عادت ها را به وجود میآورند. او باید برای از بین بردن عادتهایی که می او را شکست بدهند سرعت عمل داشته باشد و برای پذیرش تمرینات و تکرارهایی که مبدل به عادتهایی می شوند که در دستیابی به موفقیت مورد نظرش به او کمک می کنند، شتاب کند. بسیار جالب است که بدانید عادتهای شما واقعا از کجا ناشی می شوند؟ آنها از اقدامات شما به وجود می آیند. درست است؟ اما اقدامات شما از کجا ناشی می شوند؟ عادت‌های شما ناشی از فعالیتهای روزانه‌ای هستند که در طول زمان مرکب شدند. فعالیتهای شما نتیجه انتخابهای آنی شماست. انتخابهای شما ناشی از عادت‌های فکری شماست که در واقع آنها هم محصول تفکر شما هستند و تفکر شما ناشی از دیدگاه شما در مورد جهان و جایگاه خودتان در آن است، یعنی فلسفه شما. به همین دلیل است که کلید دستیابی شما به موفقیت و تسلط یافتن بر برتری خفیف از طریق تأثیر بلند مدت عادت تفکر روزانه و اقدامات روزمره شماست یعنی از طریق فلسفه شما هدف اصلی این کتاب ارائه ساختاری برای طراحی موفقیت شماست هنگامی که از برتری خفیف و نحوه بکارگیری آن به نفع خودتان آگاه شوید می توانید آگاهانه به موفقیت برسید حس غریزی شما از برتری خفیف به خلبان خودکار شما تبدیل می شود. شما را هدایت می کند، در مسیر درست نگه می دارد و به شما کمک می کند تا پیشرفتتان را اندازه گیری کنید. همه ی شما را می سنجد و عادتهایی را که به نفع شما عمل نمی کنند دور می اندازد و عادات جدیدی را ترراحی می کند که به نفع شما عمل می کند. کلیدش این است که آن گذینه های درست را انتخاب کنید. تعویز کابل های فولادی رفتار آیا تا کنون کابل های فولادی بسیار بزرگ و تنومندی که پل های معلق مانند پل گلدنگیت در سان فرانسیسکو یا پل ورازان و ناروز در نیویورک را نگه میدارند دیده اید؟ آنها انعطاف پذیر و در عین حال بسیار زخیم و محکم هستند و این حس را به شما می‌دهند که هیچ نیروی بشری نمی آنها را تخریب کند. کابل های رفتار که از انتخاب های کوچک روزمره شما ساخته شده اند، درست مانند آن تاراپود فلزی عظیمی هستند که آن پل ها را معلق نگه می‌دارند. هر انتخاب شما مانند یک سیم فولادی طویل است. این سیم باریک به تنهایی خیلی مهم نیستند، اما وقتی که به یکدیگر بافته و تنیده می شوند، قطور مستحکم و قدرتمندی را تشکیل می دهند. همانطور که اوید شاعر رومی می نویسد، هیچ چیزی قوی تر از عادت نیست. کابل ساخته شده از انتخاب درست، از شما حمایت و پشتیبانی می کنند و آنهایی که از انتخاب اشتباه ساخته شده اند، شما را محدود و محبوس می کنند. این کابل ها عادت تفکر و نگرش شما هستند. آیا می خواهید بدانید که برتری خفیف شما را به کجا می برد؟ به عادتهای تفکر غالبتان و نیز هایی که بر حسب عادت انتخاب می کنید نگاه کنید. عادتهای شما در سطح ناخداگاه عمل می کنند به این معنی که به طور عادی از آنها آگاه نیستید. فقط با آوردن یک عادت به سطح خداگاهتان است که می توانید ببینید چه کاری انجام می دهد و آیا شما را توانمند می سازد و به نفع شما عمل می کند یا اینکه علیه شما عمل می کند. با توسعه تفکر به روش برتری خفیف و به ویژه با بکار بردن قدرت بازتابش پرتو آگاهی را بر روی عادتهایتان میتابانید. وقتی متوجه شوید عادتی به نفع شما عمل نمی‌کند چگونه آن را تغییر می‌دهید یا از بین می‌برید همه کاری که لازم است انجام دهید این است که بدانید انرژی و زمانتان را باید در کجا متمرکز کنید تلاش برای از بین بردن یک عادت ناخواسته شبیه تلاش برای فکر نکردن به یک فیل است هرچه بیشتر تلاش کنید که به آن فکر نکنید بیشتر درباره آن فکر می کنید. دلیلش این است که هر چیزی که بر آن تمرکز کنید رشد می کند. به همین دلیل است که وقتی افراد برای صحبت کردن، فکر کردن، شک کردن یا نگران شدن درباره آنچه نمیخواهند انرژی زیادی صرف می کنند، معمولا دقیقا همان چیز ناخواسته را به دست میآورند. خلاص شدن از عادتی که آن را نمیخواهید از طریق رویارویی مستقیم بسیار دشوار است شیوه انجام دادن این کار این است که عادت دیگری را که خواهانش هستید جایگزین آن عادت ناخواسته کنید اما به وجود آوردن عادت جدید و بهتر کاری است که میدانید چگونه انجامش دهید این کار را به همان شیوه انجام میدهید که عادت فعلیتان را ساخته اید گام به گام گام های کودکانه به شیوه برتری خفیف در ادامه هفت عادت رفتاری و نگرشی مثبت و سازنده آورده شده است که قاطعانه شما را تحت هر شرایطی به موفقیت می رسانند و در مسیر رسیدن به رؤیاهایتان از شما پشتیبانی می کنند. عادت اول حضور داشته باشید قرباقی باشید که نه تنها تصمیم به پریدن از روی سنبل آبی می گیرد بلکه واقعا می پرد. جهان مملو از شک و تردید است. تردید شالوده و سنگ بنای متوسط و معمولی بودن است. وقتی از افرادی که به موفقیت‌های فوق‌العاده و شگفت‌آوری دست یافتند، بپرسید چگونه را می‌خواستند به انجام رساندند، حیرت‌آنجیز است که اغلب های شبیه این به شما می‌گویند: من فقط تصمیم به انجام دادن آن کار گرفتم. مهارت، دانش، تجربه ارتباطات، منابع، تخصص، دقت و زیرکی همه بخشی از سفر موفقیت هستند، اما هیچ کدام از آنها سودمند نیست مگر اینکه خود سفر آغاز شده باشد. کارتان را آغاز کنید و توانایی انجام دادن آن به دنبالش می آید. وقتی که دختر من وارد دانشگاه شد بسیار نگران بود، او در دبیرستان شاگرد خوبی بود و با نمرات عالی فارغ و تحصیل شده بود اما حالا پادر محیطی میگذاشت که همه افراد با نمرات عالی فارغ و تحصیل شده بودند. من این موضوع را به وضوح در مراسم معارفه دانشجویان تازه وارد دانشگاه فلوریدا حس کردم. به همراه صدها نفر از دانشجویان و والدینشان در آنجا نشسته بودیم. رئیس دانشگاه از تریبون اعلام کرد که امسال 6700 دانشجوی تازه وارد دارند که میانگین جی آنها چهار و نمره آزمون تجزیه و تحلیل مفاهیم آنها جزء ده درصد بالایی کشور است. نمیدانستم که قصد او انگیزه دادن به دانشجویان است یا ترساندن آنها، اما از چهره امبر اینطور به نظر می‌رسید که اگر رئیس دانشگاه قصد ترساندن آنها را داشته، به هدفش رسیده است. پس از پایان مراسم معارفه، امبر گفت، پدر من در اینجا در کنار بهترین های کشور هستم، چطور می توانم نسبت به هم کلاسی هایم برتری پیدا کنم؟ او واقعا میخواست که کارش را عالی انجام دهد و بهترین رتبه کلاس را به دست آورد، اما به هیچ وجه آن را امکان پذیر نمیدید. من به او همان چیزی را گفتم که به شما میگویم، حضور داشته باش، اگر فقط و فقط به حضور داشتن خودتان متعهد شوید، نیمی از نبرد را برده اید. فقط با حاضر بودن است که می توانید در هر شرایطی از نیمی از افراد بالاتر باشید. آنلامات رمان نویس مشهور و نویسنده ی کتاب یاری خواستن سپاسگزاری فریاد شادی سه دعای اصلی درباره قدرت حضور داشتن اینطور طور می نویسد. امید در تاریکی آغاز می شود. امیدی سرسختانه به اینکه اگر فقط حضور داشته باشید و تلاش کنید که کارهای درست را انجام دهید، سپیده دم موفقیت فرا می رسد. شما تلاش می کنید و منتظر میمانید. شما تسلیم نمیشوید. تلاش کردن و انتظار کشیدن و تسلیم نشدن. عادت دوم: ثابت قدم باشید. ودیالن گفته است 80 درصد از موفقیت در حضور داشتن است این فلسفه ای است که من از صمیم قلب بر آن می گذارم اما می خواهم دو کلمه را به آن اضافه کنم 80 درصد موفقیت نتیجه حضور داشتن هر روزه است این واقعیتی است که شما را به هدفتان میرساند به همان اندازه که حضور داشتن ضروری و حیاتی است اما ثبات و پایداری است که قدرت آن را چند برابر میکند با حضور داشتن مداوم است که معجزه اتفاق میافتد. تام سیور بازیکن بزرگ بیسبال این موضوع را به بهترین نحو بیان کرده است او میگوید نگرش من در بیسبال این بود که برای ثبات و استمرار تلاش کنم و نگران اعداد و ارقام نباشم اگر فکرتان را به آمار معطوف کنید کوتهبین میشوید اما اگر هدفتان ثبات و استمرار باشد آمار و ارقام سرانجام محقق میشوند پس از آن مراسم معارفه رعباور به امبر گفتم نه تنها لازم است که هر روز در دانشگاه حاضر شود بلکه باید با حداقل دو ساعت مطالعه در روز آن را تقویت کند. میدانستم که خارج شدن از مسیر درست و مجذوب تفریحات زندگی دانشجویی شدن چقدر آسان است. میدانستم که دوستان جدیدش از او میخواهند تا در کلاسها حاضر نشود و در سایر فعالیت های دانشگاهی به آنها ملحق شود. من از چرخه وسوسه انگیز اما معیوب اطلاف وقت و مجبور شدن به درس خواندن شدید برای آزمون ها خبر داشتم. توصیه من به انبر چه بود؟ آن را برای دیگران بگذار، حضور داشته باش و ثابت قدم باش. به او گفتم فقط همین کار را انجام بده، هر روز سر وقت در کلاسهایت حاضر شو و روزی دو ساعت درس بخوان. انجام دادن این کار سخت نیست، در واقع آسان است، البته، انجام ندادنش نیز به همان اندازه آسان است. سه هفته بعد، انبر با من تماس گرفت و گفت پدر، آن کلاسم را که در آن 400 همکلاسی دارم به یاد می آورید، در حال حاضر فقط 80 نفر در آن کلاس حاضر می شوند. هیچ کسی این درس را حذف نکرده بود. با این حال پس از گذشت 3 هفته از 80 درصد افراد کلاس خبری نبود. این همان روشی است که اکثر مردم جهان در پیش می گیرند. به همین دلیل است که متوسط و معمولی بودن در جهان شایع است. به همین دلیل است که 95 درصد از مردم روی منهنی شکست زندگی می کنند و فقط 5 درصد از مردم ساکن منهنی موفقیت هستند. چهار سال بعد، انبر با انجام دادن آن دو کار ساده یعنی حضور داشتن و ثابت قدم بودن با بالاترین نمره فارغ و تحصیل شد. او بهتر یا باهوشتر از سایر بچه ها نبود همه آنها دانشجویانی نخبه و درجه یک بودند اما امبر یک برتری مشخص و متمایز داشت که سایرین نداشتند او فلسفه ای داشت که او را وادار می کرد. حتی وقتی همه دانشجویان طور دیگری عمل می کردند، او در مسیر درست بماند او به طور مداوم در کلاس ها حاضر شد و به موفقیت رسید زیرا فلسفه ساده ای داشت که هر روز بر طبق آن عمل آن میکرد. اگر متعهد شوید که هر روز به طور مداوم و بدون توجه به اتفاقات جاری حضور داشته باشید، بیش از نیمی از نبرد را برده اید. بقیه آن به مهارت، دانش، انگیزه و نحوه اجرای شما بستگی دارد. عادت سوم: داشتن دیدگاه مثبت اواخر دهه نود روانشناسی به نام مارشال لوزادا تحقیقات بسیار جالبی درباره گروه های کسب و کار انجام داد. او گروه گروه‌های متشکل از افراد کسب و کار را در اتاق‌های کنفرانس مختلفی قرار داد که به آینه‌های طرفه و سیستم پیشرفته‌ای از نمایشگرها و نرمافزارهای خاصی مجهز بودند و این امکان را برای او فراهم می‌کردند که هر جمله هر شخص حاضر در اتاق را در طول یک کنفرانس یک ساعته به طور جداگانه پیگیری کند. او همه این موارد را ثبت و تجزیه و تحلیل کرد و هر یک از این افراد را بر اساس داشتن دیدگاه‌های مثبت یا منفی، تمرکز روی خودشان یا دیگران و نیز بر اساس باز بودن دیدگاهشان در آنهایی که سؤال می‌کردند یا بسته بودن دیدگاهشان در آنهایی که از نظراتشان دفاع می‌کردند، بندی کرد. او سال‌های متعددی این کار را انجام داد. لوزادا پس از تجزیه و تحلیل جمله‌ها و اظهارات شست گروه مختلف، نتایج به دست آمده را در مقابل عملکرد واقعی گروه‌ها و افراد در دنیای واقعی کسب و کار به تصویر کشید. عبدن نمی نمی‌توانید نتایج به دست آمده را حدس بزنید. خب، شاید هم بتوانید حدس بزنید. نتایج نشان داد هرچه دیدگاه فرد مثبتتر باشد تعاملات گروه سازندهتر و خلاقتر می شود و همچنین موفقیت واقعی کسب و کارشان در دراز مدت بیشتر خواهد شد. این فقط یکی از صدها طرح پژوهشی انجام شده در دودهه اخیر است که همان چیزی را تایید می کند که تجربه و عقل سلیم تایید می روبرو شدن با رویدادهای زندگی روزمره با دیدگاه همیشه مثبت شما را به سوی اهدافتان، رهنمون میسازد با توجه به این پژوهش ها افرادی که همیشه به جای دیدن مشکلات فرصت ها را می بینند افرادی که در هر موقعیتی به جای تمرکز بر بدترین ها بر بهترین ها تمرکز می کنند افرادی که به خصوصیات بهتر دیگران توجه می کنند و گذشته ضعیف و بد آنها را به فراموشی می سپارند و نیز در هر شرایطی به نیمه پر لیوان نگاه می کنند شادتر و خلاق ترند درآمد بیشتری دارند روابط دوستانه بیشتری دارند بدنشان سیستم ایمنی قویتری دارد، حملات قلبی و سکته مغزی کمتری دارند، زندگی زناشویی بهتر و طولانیتری دارند، طول عمر بیشتری دارند و در شغل‌هایشان موفق‌ترند. در حقیقت افرادی که عادت داشتن دیدگاه مثبت را در خودشان ایجاد کرده اند، نه تنها نیمه پر لیوان را می‌بینند، بلکه لیوان را لبریز و لب‌اللب می‌بینند و از آنجایی که آنها لیوان را اینگونه میبینند می‌بینند، همیشه همین طور هم برای آنها پایان می‌یابد. نگرش اقدامات را شکل می‌دهد، اقدامات نتایج را می‌سازند و نتایج سرنوشت را تعیین می‌کنند. دان بویتنر کتابی دارد به نام مناطق آبی، درس‌هایی برای طول عمر بیشتر از افرادی که عمر طولانی‌تری داشتند. او برای مطالعه و بررسی عادات زندگی روزمره مردمی که سالم‌ترند و طول عمر بسیار بیشتری از سایر مردم کره زمین دارند، در سراسر جهان سفر کرد. بنر و گروهش از میان همه عواملی که احتمالا در سلامتی سر زندگی و طول عمر تاثیر میگذارند فهرستی تهیه کردند این افراد یک زندگی فعالانه دارند دو هدف و دلیلی را دنبال می کنند تا صبحها زود بیدار شوند سه برای کم کردن و از بین بردن استرس وقت میگذارند مانند سپاسگذاری و دعا چهار، وقتی که هشتاد درصد معداشان پر شد، از غذا خوردن دست می‌کشند. 5. پنج، رژیم غذایی سالمی دارند که بر پایه سبزیجات و خصوصاً حبوبات است. شش، آب کافی می نوشند. هفت، نقش فعالی را در یک انجمن مذهبی ایفا می کنند. هشت، تأکید بسیار زیادی بر خانواده دارند. و نه، در محافل اجتماعی همفکر با عادتهای مشابه عضویت دارند. همانطور که بودنر اشاره میکند، عوامل فیزیولوژیکی مانند ورزش و رژیم غذایی در طول عمر و سلامتی نقش دارند، اما نه آنقدر زیاد که انتظارش را داشتیم. بخش زیادی از این عوامل به نگرشها، عادت‌های رفتاری و افرادی که با آنها هجر و نشر دارید مرتبط است. حالا که درباره داشتن دیدگاه مثبت صحبت می میکنیم، اجازه دهید یک تصور غلط رایج درباره دیدگاه مثبت را همین حالا توضیح دهم. پرورش دیدگاه مثبت به این معنی نیست که همیشه شاد و خوشحال باشید یا اینکه زندگی هرگز به شما سخت نمیگیرد. هرگز به این معنی نیست که حتی زمانی که صدمه دیدید با یک لبخند ابلهانه روی صورتتان راه بروید و نیز به معنی زندگی در انکار و نادیده گرفتن واقعیت‌های دردآور و کشمکش ها نیست. افرادی که دیدگاه بسیار مثبت را در خودشان پرورش می‌دهند نیز دوچار روزهای سخت می‌شوند وقتی که مجروح شویم بدن ما مانند هر شخص دیگری دوچار خونریزی می‌شود بعضی روزها وقتی که از خواب بیدار می‌شوم دوچار افسردگی دلشوره و کج‌خلقی هستم حتی ممکن است ندانم چرا اما زندگی سخت و نامید کننده به نظر می‌رسد و دلم می‌خواهد در رخت خواب بمانم وقتی که این حالت اتفاق میافتد اولین کاری که می‌کنم این است که فهرستی از موهبت‌هایم تهیه می‌کنم به گفته روانشناسان مثبتگرا عادت قدردانی و سپاسگزاری یکی از رایج‌ترین خصیصه‌های افراد همیشه شاد است افرادی هستند که دوستم دارند روابطی عالی دارم سالم هستم کسب و کاری عالی دارم عاشق کارم هستم و غیره اما گاهی اوقات ساعت‌ها یا حتی چندین روز طول می‌کشد تا از آن حالت افسردگی و کچخلقی رها شوم. اهمیتی ندارد که چقدر آدم موفقی هستید. در هر حال، گاهی اوقات دوچار افسردگی میشوید. این موضوع برای همه پیش می‌آید و استثنایی قائل نیست. گاهی اوقات دلیل خوبی برای کسل شدن افسردگی دارید. اتفاقات بد هر از چند گاهی رخ می‌دهند و هیچ کس زندگی کاملا موفق و مسون از مشکلات ندارد. حقیقت این است و همیشه اینطور خواهد بود که گاه و زندگی سخت و رنجاور می شود. وقتی که این اتفاق رخ میدهد اولین چیزی که باید به یاد داشته باشید این است که در مصاحبت با افراد خوبی هستید. افسردگی به سراغ همه می رود، اما این نکته است که من یاد گرفتم و تاکنون بیش از یک بار من را از افسردگی نجات داده است. اگر من درد تنهایی را احساس نکنم، امکان ندارد معنی عشق را درک کنم. اگر بدی را نشناسم و از آنها آگاه نباشم نمیدانم که چه چیزی خوب است و چقدر احساس خوبی به من میدهد. بدون درک احساس کسلی و افسردگی نمیتوانم احساس خوشحالی و رضایت را درک کنم. زندگی بالا و پایین دارد در زندگی همه چیز خمیده است. بنابراین وقتی که اتفاقات بدی برای شما رخ میدهد افسردگی را در آغوش بگیرید. این کار داشتن دیدگاه مثبت را در شما پرورش میدهد. وقتی که در زندگیتان مشکلات و سختی ها پدید میآیند و شرایط بد به شما هجوم می آورد آن را با آغوش باز بپذیرید زیرا شما را قویتر و زندگیتان را غنیتر می کند شما نمی توانید شادی را درک کنید مگر اینکه غم اندوه را درک کرده باشید. گاهی اوقات زندگی شما را خسته و ناکام می کند و افسردگی شما را در خودش فرو میبرد آن را بپذیرید و برای گذر از آن مبارزه کنید و بدانید که تنها نیستید. گامهای کودکانه بردارید. همه همپیمانان برتری خفیف را به یاد بیاورید و بدانید مسیری خارج از افسردگی نیز وجود دارد.